نخش در باب ناتوانی فرهنگی یک علت دیگر احساس ناتوانی این است که مردم بی و مغرور جهان را به دو اردوگاه تقسیم می کنند اردوگاه امور بهنجار و اردوگاه امور نابهنجار واقعا چقدر عجیب این جمله که با حالتی ناباورانه و نسبتا وحشت زده همراه با بالا انداختن ابرو بیان میشود غالباً تجربیات و عقاید ما را رد می‌کند و در کل به انکار حقانیت و انسانیت ما می‌انجامد. در تابستان 1580 منتنی به آرزوی دیرینش جامعه عمل پوشاند و برای اولین بار به خارج از فرانسه مسافرت کرد و سوار بر اسب از طریق آلمان اتریش و سوئیس به روم رفت. چهار نجیب زاده جوان از جمله برادرش برتران، دوماتکلون و حدود ده خدمتکار همراه او بودند. مقدر بود که آنها ه ما از خانه دور بمانند و سه هزار مایل سفر کنند. آنها از شهرهایی مثل بال، بادن، شافهوززن، آکسبورگ، اینسبروک، ورونا ونیز، پادوا، بولونیا. فلورانس و سینا گذشتند و سرانجام حوالی شب آخرین روز نوامبر 1580 به رم رسیدند. با شروع مسافرت گروه منتنی دریافت که عقاید مردم درباره امر بهنجار به سرعت از ایالتی به ایالت دیگر تغییر می کند. در مهمانخانه های ایالت های سوئیس تصور میکردند بالاتر بودن تخت خواب ها از کف زمین امری بهنجار است. بنابراین برای رسیدن به تختخواب باید از پله‌ها بالا می‌رفتند. آنها تصور می‌کردند باید پرده‌های زیبای اطراف مسافران وجود داشته باشند و هر یک از مسافران باید اتاقی جداگانه داشته باشند. چند مایل دورتر در آلمان تصور می‌کردند روی زمین بودن تختخابها امری به هنجار است و هیچ پرده‌ای نباید در اطراف مسافران باشد و هر چهار نفر مسافر باید در یک اتاق بخوابند. مهمان‌خانه‌داران آلمانی لحاف پر و مهمان‌خانه‌داران فرانسوی ملافه می‌دادند. در شهر بال مردم آب را با شراب خود مخلوط نمی‌کردند و شش یا هفت وعده شام می‌خوردند. و در بادن روزهای چهارشنبه فقط ماهی می‌خوردند. کوچکترین دهکده سوئیس حداقل به دست دو پلیس محافظت میشد. ها هر پانزده دقیقه یک بار و در برخی شهرها هر دقیقه ناقوسهای خود را به صدا در میآوردند. در لیندائو سوپ به و قبل از آن گوشت می‌دادند و نان را با رازیانه یا مسافران فرانسوی از این تفاوت‌ها ناراحت بودند. در هتل‌ها از بوفه هایی که غذاهای عجیب داشتند دوری می‌کردند. و غذاهای بهنجاری را سفارش میدادند که در وطن خود با آن آشنا بودند. آنها سعی میکردند با کسی که مرتکب این اشتباه شده بود که به زبان آنها حرف نزده بود صحبت نکنند و با احتیاط به نان رازیانه نوک میزدند. منتنی از پشت میزش به آنها نگاه میکرد. بیرون از دهکده هایشان احساس میکنند مثل ماهی بیرون از آب هستند. هر جا می روند، به راه و رسم خود میچسپند و راه و رسم بیگانه را ترد میکنند. اگر با هموطنی روبرو شوند، این واقعه را جشن میگیرند. با احتیاطی مقرون به عبوس بودن و کمحرفی، در حالی که خود را در لباسهایشان پنهان کرده اند مسافرت میکنند و خود را از بیماری های واگیردار سرزمینی ناشناس حفظ میکنند. در میانه قرن پانزدهم در در های جنوبی آلمان روش جدیدی برای گرم کردن خانه ها به وجود آمده بود. کاستنوفن، بخاری آهنی جعبی شکل و بدون تکیهگاهی بود که از ورقه های مستطیلی درست شده بود که به هم چفت شده بودند. درون این بخاری زغال سنگ یا چوب میسوخت. در زمستان های بلند این بخاری مزایای بسیار زیادی داشت. بخاری های بسته می توانستند چهار برابر آتش بیحفاظ حرارت ایجاد کنند و در عین حال، به سوخت کمتری نیاز داشتند و به بخاری پاکون احتیاج نداشتند. این حرارت به وسیله روکش جدار جذب و به آرامی و به طور مداوم در هوا منتشر می شود. در اطراف بخاری میلههایی برای هوا دادن و خوش کردن لباس های شست شده نسب می کردند و خانواده ها می در سراسر زمستان در اطراف بخاری های خود بنشینند. ولی این روش فرانسوی ها را تحت تأثیر قرار نداد. به نظر آنها آتش بدون حفاظ روش ارزانتری بود. آنها بخاری‌های آلمانی را محکوم می‌کردند که نمی‌توانند منبع نور باشند و رطوبت زیادی را از هوا می‌گیرند و هوای اتاق را سنگین می‌کنند. این مسئله ناشی از عدم درک متقابل میان مناطق بود. در آکسبورگ در اکتبر 1580 مونتنی با فردی آلمانی روبرو شد که انتقاد مشروحی از شیوه فرانسوی ها در گرم کردن خانه‌هایشان با آتش بدون حفاظ ایراد کرد و مزایای بخاری آهنی را برشمرد. وقتی شنید که مونتنی فقط چند روز در آن شهر می‌ماند، مونتنی روز 15 هم رسیده بود و قرار بود روز 19 آنجا را ترک کند. افسوس خورد زیرا یکی از گرفتاری‌های اصلی ترک آکسبورگ را سنگینی سری می‌دانست که در هنگام بازگشت مونتنی به طرف آتش های بدون حفاظ نصیب او می‌شد. درست همان سنگینی سری که مدت‌ها بود فرانسوی‌ها های آهنی را به ایجاد آن متهم می‌کردند. مونتنی این مسئله را در دو منطقه مجاور بررسی کرد. در بادن اتاقی با بخاری آهنی گرفت و چون به بوی خاص حاصل از آن عادت کرده بود شب را به راحتی سپری کرد. مونتنی گفت که بخاری به او اجازه داد تا لباس پشمی برتن نکند. او ماه ها بعد در یکی از شبهای سرد ایتالیا از فقدان بخاری در مهمان خانش ابراز تأسف کرد. در بازگشت به خانه، ویژگی های هر یک از این دونو سیستم حرارتی را ارزیابی کرد. این امر صحت دارد که بخاری های آهنی گرمای سنگین ایجاد می‌کنند و مواد سازنده ی آنها در هنگام گرم شدن بویی منتشر می‌کنند که موجب سردرد افرادی می‌شود که به آنها عادت ندارند از طرف دیگر چون گرمای حاصل از این بخاری ها منظم و یک نواخت است و در همه جا منتشر می‌شود و چون این بخاریها فاقد شعله مشهود دود و جریان هوای حاصل از دودکش‌های ما هستند دلایل زیادی وجود دارد که این سیستم را با روش خودمان هم تراز بدانیم. بنابراین آنچه مونتنی را آزار میداد، عقاید نسنجیدهی تزلزل ناپذیر آکسبورگی و مرد فرانسوی بود که هر یک سیستم حرارتی خود را برتر میشهمرند. اگر مونتنی در هنگام بازگشت از آلمان بخاری آهنی آکسبورگی در کتابخانهش نصف میکرد، و با همان سوء زنی با آن برخورد میکردند که در برابر هر چیز جدیدی از خود نشان میدادند. هر ملتی آداب و رسوم و عادتهای زیادی دارد که نه تنها برای ملل دیگر ناشناخته است بلکه به نظر آنها وحشیانه و مایه شگفتی است. البته مسلما نه بخاری و نه شمینه هیچ یک وحشیانه و شگفت آور نبودند. به نظر می رسد تعریفی که هر جامعه ای از امر بهنجار ارائه می کند فقط بخشی از امور واقعا معقول را دربر دارد و نامونسفانه تجربیات وسیع موقعیتی ناآشنا را ترد می کند. منتنی به نجیبزادی آکسپورگی و همسایگان گاستکونیش نشان داد که بخاری آهنی و شمینه بدون حفاظ از جایگاه مشروعی در قلمرو پهناور سیستم های حرارتی قابل قبول برخوردارند. به این ترتیب او سعی می‌کرد تا درک ساده لوحانه خوانندگانش از امر بهنجار را گسترش دهد و از روش فیلسوف محبوبش پیروی کند. وقتی از سقراط میپرسیدند اهل کجاست؟ نمی‌گفت اهل آتن، بلکه می‌گفت اهل دنیا. تازه معلوم شده بود که این دنیا بسیار عجیبتر از چیزی است که اروپایی‌ها انتظار داشتند. در روز جمعه 12 اکتبر 1492 چهل و یک سال پیش از تولد مونتنی، کریستوف کولوم به یکی از جزیرهای مجموعه جزایر باهاماس در مدخل خلیج فلوریدا رسید و با برخی از سرخپوستان گوانهانی تماس برقرار کرد. یعنی با کسانی که هرگز چیزی از حضرت مسیح نشنیده بودند و برهن راه می رفتند. مونتنی به این موضوع بسیار علاق من بود. در کتابخانه دایرهایی شکل او چندین کتاب درباره زندگی قبایل سرخپوست آمریکا وجود داشت که از میان آنها میتوان به کتاب تاریخ عمومی سرخپوستان اثر فرانسیسکو لوپز دو گمارا تاریخ دنیای نو اثر جیرالامو بنزونی و سفر به برزیل اثر ژان اشاره کرد. او در این کتابها خواند که در آمریکای جنوبی مردم دوست دارند انکبوت، ملخ، مورچه، سوسمار و خفاش بخورند. آنها این حیوانات را میپزند و با سسهای متنوعی میخورند در برخی قبایل آمریکایی دختران باکره آزادانه قسمتهای شرمآور بدن خود را نشان میدادند عروسها در روز عروسی خود عیاشی میکردند مردان میتوانستند با هم ازدواج کنند و مردگان را میجوشاندند در حلیم جو میکوبیدند با شراب مخلوط میکردند و خویشاوندان آنها این مخلوط را در مهمانی های پرشوری مینوشیدند در برخی کشورها زنان ایستاده ادرار می کردند و مردان بر سر پا نشسته در این کشورها مردان می موهای جلوی بدنشان رشد کند ولی موهای پشت را میتراشیدند. در برخی کشورها مردان را خط نمی کردند ولی در دیگر کشورها می نوک قضیب رنگ آفتاب را ببینند و بنابراین با احتیاط پوست را روی آن می کشیدند و آن را با ریسمان های کوچکی به هم میبستند. در برخی کشورها در هنگام استقبال از کسی به او پشت میکردند و در برخی کشورها وقتی پادشاه توف میکرد، ملازم مخصوص او دستش را دراز میکرد و وقتی پادشاه شکم خود را خالی میکرد، ملازمان مطفوع او را در پارچه کتانی جمع میکردند. به نظر میرسید هر کشوری درک متفاوتی از زیبایی دارد. در پرو گوشهای بزرگ زیبا هستند. تا آنجا که میتوانند آنها را به طور مصنوعی میکشند. مردی که هنوز در قید حیات هست میگوید که در شرق کشوری را دیده که در آن رسم کشیدن گوشها و پر کردن آنها با جواهرات را با چنان احترامی برگزار میکنند که او اغلب میتوانسته بازو، لباس ها و تمام بدنش را داخل سوراخهایی کند که زنان در نرمه گوش خود ایجاد میکردند. در جای دیگری ملت های وجود دارند که دندان های خود را به دقت سیاه می کنند و از مشاهده دندان سفید نفرت دارند. در جای دیگری دندان را قرمز می کنند. زنان مکزیکی پیشانی کوتاه را نشانه زیبایی میدانند. بنابراین در حالی که موی بقیه بدن خود را میچینند، اجازه میدهند موی پیشانی زخیم شود و به طور مصنوعی آن را تکسیر می کنند. آنها، سینه های بزرگ را چونان میستایند که وانمود میکنند از روی شانه هایشان به نوزادان خود شیر می دهند مونتنی از ژان دولری آموخت که قبایل توپی برزیل لخت مادرزاد راه می روند و هیچ احساس شرمندگی نمی کنند در واقع وقتی اروپایی ها سعی کردند به زنان توپی لباس بدهند آنها خندیدند و لباسها را پس دادند و تعجب کردند که چرا باید خود را با چنان چیز ناراحت کننده ازید کنند. دولری گراورساز که هشت سال در کنار قبایل زندگی کرده بود مراقب بود که این شایعه رایج در اروپا را تسیح کند که توپی درست مثل حیوانات پشمالو هستند. دولری می گوید، آنها به طور طبیعی زره از ما پشمالوتر نیستند. مردان سر خود را میتراشیدند و زنان موی خود را بلند میکردند و آن را با بافه قرمز قشنگی میبستند. سرخپوستان توپی استهمام را دوست داشتند هر وقت رودخانه ای می میدیدند به داخل آن می پریدند و یکدیگر را میشستند. آنها ممکن بود روزی دوازده بار خود را بشویند. آنها در بناهای کاروان زندگی می کردند که دوست نفر در آن می خوابیدند. تخت هایشان از پنبه بافته و بین ستونها مثل ننوآویزان می شدد توپی وقتی به شکار میرفتند تختخواب هایشان را با خود می بردند و آنها را بین درختان آویزان میکردند و اصرها چرت میزدند هر شش ماه یک بار به محل جدیدی میرفتند زیرا احساس می تغییر منظره برایشان خوب است دولری می گوید آنها جواب دیگری ندارند غیر از اینکه میگویند آب و هوا حالشان را خوب می کنن. زندگی توپی ها چنان به سامان بود که اغلب تا صد سالگی زندگی می و در کوهنسالی هرگز موی سفید یا خاکستری نداشتند. آنها به شدت مهمان نواز بودند. وقتی تازه واردی به دهکدهی توپی ها زنان صورتهای خود را میپوشاندند و شروع به فریاد و ابراز خوشحالی می کردند. حالتان چطور است؟ چقدر به خود زحمت داده ای تا بیایید و ما را ببینید؟ بلا فاصله به مسافران نوشیدنی محبوب توپی را میدادند که از ریشه گیاهی درست میشد و مثل شراب قرمز بود و مزه تندی داشت ولی برای معده خوب بود مردان توپی میتوانستند بیش از یک زن بگیرند و گفته میشد به همه آنها علاقه داشتند به قول منتنی کل نظام اخلاقی آنها شامل دو بند بود پایداری در جنگ و عشق به زنانشان و ظاهرا زنان از این وضع خوشحال بودند و هیچ حسادتی نشان نمیدادند. روابط جنسی آنها آزاد بود، تنها ممنوعیت این بود که کسی حق نداشت با خیشاوندان نزدیک خود رابطه داشته باشد. منتنی در حالی که همسرش در طبقه پایین کاخ بود، با لذت این جزئیات را بیان کرد. یک ویژگی زیبای ازدواج های آنها شایان ذکر است، درست همانطور که زنان ما با شور و حرارت، مانع از عشق و محبت ما به زنان دیگر میشوند زنان آنها با همان شور و حرارت عکس این کار را انجام میدهند آنها بیش از هر چیزی نگران شهرت شوهر خود هستند و مواظبند و خود را به زحمت میاندازند تا هرچه بیشتر هوو داشته باشند زیرا این امر گواه ارزش شوهرشان است بیتردید این امر عجیب بود ولی به نظر منتنی هیچ چیز آن نابههنجار نبود منتنی در اقلیت بود. به زودی پس از کشف کلمب استعمارگران اسپانیایی و پرتغالی از اروپا به آمریکای جنوبی رفتند تا از ترزمین های جدید سو استفاده کنند و به این نتیجه رسیدند که بومی ها خیلی بهتر از حیوانات نیستند. ویلگانیان، شوالیه کاتولیک، آنها را حیواناتی به شکل انسان خاند. ریشه، کشیش پیرو و کالون، عقیده داشت که آنها هیچ درک اخلاقی ندارند. خرفتی روح آنها را رو فرا گرفته و خوب را از بد تمیز نمی دهند و لورانجوبر پزشک پس از معاینه پنج زن برزیلی تایید کرد که آنها عادت ماهانه ندارند و بنابراین از نوع بشر نیستند اسپانیاییها با حذف نام سرخ پوستان از فهرست نوع بشر شروع به قتل آنها کردند گویی آنها حیوان بودند تا سال 1534 چهل و دو سال پس از ورود کلمب امپراتوری های آستک و اینکان نابود و مردمان آنها یا برده یا کشته شده بودند. مونتنی با مطالعه اثر بارتولومه و لاسکاساس به نام مطالعه اجمالی در باب نابودی سرخپوستان، چاپ 1552 در سویل، ترجمه فرانسه به دست ژاک دو میگرو در 1580 تحت عنوان بیرحمی و بساوتهای اسپانیایی نسبت به هند شرقی که دنیای نو خوانده می به این وحشیگری پی برده بود. سرخپوستان به دلیل مهمان نوازی و ضعف ازولانی خود نابود شدند. آنان روستاها و شهرهای خود را به روی اسپانیایی گشودند و مهمانانشان با قافرگیری کامل به آنها حمله کردند. سلاهای ابتداییشان همتراز توپها و شمشیرهای اسپانیایی نبود. و فاتحان در حق قربانیان خود هیچ رحمی نکردند. آنها کودکان را کشتند، شکم زنان حامل را دریدند، چشم ها را از حدق خارج کردند، کل خانواده ها را زنده زنده در آتش سوزاندند و شبانه روسته ها را آتش زدند. سک های تربیت شده را به جنگل ها فرستادند تا سرخپوستان فراری را تکه تکه کنند. مردان را برای کار به معادن طلا و نقره فرستادند در حالی که با طوق‌های آهنی به یکدیگر زنجیر شده بودند وقتی یکی از آنها میمرد بدنش را از زنجیر قطع میکردند. در حالی که همراه‌شان در طرف دیگر زنجیر به کار ادامه میدادند. اکثر سرخپوستان بیش از سه هفته در معادن دوام نمیآوردند. به زنان هم در مقابل چشمان شوهرانشان حد حرمت کردند. شکل مطلوب تحقیر عبارت بود از بریدن چانه و بینی لاسکاساس تعریف کرد که چگونه زنی در حالی که می دید اسپانیایی با های خود نزدیک می شوند خودش را با فرزندش به داراویخت سپس سربازی رسید و کودک را با شمشیرش دونیم کرد نیمی را به سگش داد و از راه خواست شعایر مرگ را به آورد تا کودک قطعا جایی در بهشت مسیح به آورد. چون مردان و زنان را از هم جدا می کردند و آنها دلتنگ و ناامید می شدند، تعداد زیادی از سرخ پوستان خودکشی می کردند. تخمین زده می شود که در فاصله تولد منتنی در 1533 و انتشار جلد سوم مقالات در 1588 جمعیت بومی دنیای نو از 80 میلیون به 10 میلیون نفر تنظر یافته باشد. اسپانیاییها ها را با وجدانی آسوده قصابی کردند زیرا مطمئن بودند که می انسان به هنجار چیست عقل اسپانیاییها به آنها می گفت انسان به کسی است که شلوار می پوشد. یک زن دارد انکبوت نمی خورد و در تخت خواب می خوابند. ما نمی توانستیم چیزی از گفتار و رفتار آنها بفهمیم و حتی قیافه ها و لباس آنها بسیار متفاوت با ما بود کدام یک از ما آنها را وحشی و حیوان نمی‌شمرد؟ کدام یک از ما سکوت آنها را به کن ذهنی و جهل حیوانی نسبت نمیداد. از همه اینها گذشته، آنها از آداب و رسوم ما از جمله دستبوسی و تعظیم بیخبر بودند. ممکن است آنها شبیه انسان به نظر رسیده باشند. اوه، ولی هیچ شلواری نپوشیده اند. پشت این قصابی استدلالی نادرست خوابیده. یادا کردن امر بهنجار از نابهنجار معمولا از طریق نوعی منطق استقرایی پیش می روید که به وسیله آن قانونی کلی را از نمونه های جزئی استنتاج می کنیم. به قول منطقدانان از مشاهده اینکه A1 ای یک فی و A2 فی و ای سه فی هستند به این نتیجه می رسیم که همه A ها فی هستند. برای داوری درباره باهوش بودن کسی، در رو به دنبال ویژگی های مشترک همه افراد باهوشی که قبلا دیده این می گردیم. اگر ما چند فرد باهوش را دیدیم که همگی گی لباسی تیره بر تن داشتند و جدی به نظر می رسند و بسیار مطالعه می کنند و پرعب و حتی با وقار در جایی نشستند شاید از دیدن فردی اوریان با قامت ناموزون به این نتیجه برسیم که او فردی نادان و کودن است و شاید بعدا او را بکشیم. مسافران فرانسوی که با وحشت به بخاری های آهنی اوتاخاب ها واکنش نشان می‌دادند، قبل از رسیدن به آلمان با چند شامینه خوب در فرانسه آشنا بودند که همه این شومینه ها بدون حفاظ بودند. بنابراین آنها از این امر نتیجه گرفته بودند که پایه و اساس سیستم حرارتی خوب شومینه بدون حفاظ است. مونتنی از این نخوت فکری ناراحت بود. وحشیانی در آمریکای جنوبی وجود داشتند ولی آنها کسانی نبودند که انکبوت میخوردند، بلکه اسپانیه بودند که بومیان را قتل عام میکردند. همه کس از هرچرا که مرسوم خود او نیست وحشیانه می‌خواند. ما، غیر از باورها و رسوم کشور خود، هیچ میار دیگری برای حقیقت و دلیل درست نداریم. ما، همواره در کشور خود مذهب کامل، حکومت کامل و پیشرفت ترین و کامل ترین روش انجام دادن هر کاری را داریم. مونتنی سعی نمی کرد تمایز میان امر وحشیانه و امر متمدن را از میان ببرد. مسلما تفاوتهایی در ارزش آداب و رسوم کشورها وجود داشت. نسبیگرایی فرهنگی و اندازه ملیگرایی خام و ناپخته بود. او سرگرم اصلاح روش این تمایز گذاری بود. ممکن است ساکنان کشور ما فضایل بسیاری داشته باشند ولی این فضایل وابسته به کشور ما نبودند. ممکن است ساکنان سرزمینی بیگانه اشتباهات زیادی داشته باشند ولی آنها را نمی توان صرفاً از طریق این واقعیت شناخت که آداب و رسوم مردمان آن سرزمین به نظر ما غیرعادی است. ملیت و آشنایی معیارهای بیهودهی برای تعین امر خوب هستند. عرف رایج فرانسه حکم کرد که انسان باید بینی خود را در دست مالی خالی کند ولی منتنی دوستی داشت که پس از تأمل درباره این موضوع به این نتیجه رسیده بود که شاید بهتر باشد بینی خود را مستقیما در های خود خالی کند. در حال دفاع از کار خود، از من پرسید چرا باید آن ماده لزج کثیف از چنان مزیتی برخوردار باشد که باید پارچه ظریفی آماده کنیم تا آن را بگیرد و بعد آن را بپوشانیم و با دقت با خود حمل کنیم. دیدم آن چه میگوید به هیچ وجه نامعقول نیست. ولی عادت مرا از توجه به این قرابت باز داشته، قرابتی که در آداب و رسوم مشابه دیگر کشورها چنان نفرتنگیز به نظر می رسد. ارزیابی رفتار استدلال دقیق است، نت از صبح. منتنی از کسانی سرخورده بود که ساده دلانه امر ناآشنا را با امر نابسنده یکسان می پنداشتند و بنابراین از اساسی ترین درس توازع فکری که بزرگترین فیلسوف دوران باستان داده بود قفلت می کردند وقتی از حکیم انسانی که تا کنون وجود داشته پرسیدند چه میدانند؟ پاسخ تنها چیزی که میداند این است که چیزی نمیداند. واقعا؟ چقدر عجیب؟ این جمله که با حالتی نسبتا وحشت زده همراه با بالا انداختن ابرو بیان می شود به طور ضنی بر نبههنجاری مادلا و به انکار حقانیت و انسانیت ما می انجامد در برابر این واکنش چه باید کرد؟ همان واکنشی که دوست منتنی در گاسکانی پس از خالی کردن بینیش در انگشتهایش با آن روبرو شد و همان واکنشی که در افراطی ترین شکل خود به نابودی قبایل آمریکای جنوبی انجامی؟